یک شب در ایستگاه های کشورهای اروپایی پرسه میزد آنها مثل بیشتر وقتها پلکایش روی هم افتاده بود گربه به خودش می رسید گاهی دراز می کشید حسابی با دست خیست دو طرف صورتش را تمیز می کرد بعد زیر شکم و پاهایش را لیس میزد و خیست می کرد کارش که تمام میشد دراز به دراز می خوابید و چشمهایش را میبست چیزی نمیگذشت که در خواب سیبیل بلندش میجا اینطور وقتها می گفتفت حیوان خواب میبیند و اساعیل نمیدانست که گربه خواب چه چیزهایی را می بیند. ناچار شروع به حد زدن میکرد و خیال می بافت. آن شب هم در فکر خوابهای گربه بود که روی بام اتاق صدایی شنید صدای الوار و پوشال و شاخه های خشک که با سرد و گرم شدن هوای اتاق به صدا در میآمدند. گویا کسی آن بالا راه میرفت و با هر قدم سکوت سقف را می شکست. رادیو به دست سرش را بالا گرفت و با دقت به سقف چشم دوخت. کسی از این سر تا آن سر بام راه میرفت و دوباره همان مسیر را برمیگشت نگران شد ابتدا صدای رادیو را کم و سپس خاموش کرد و آهسته گذاشت روی زمین با خاموش شدن رادیو آنها چشمهایش را باز کرد و گفت چرا خاموش کردی؟ تازه خوابم برده بود آنها صدا میاد خب بیاد روشن کن نه مثل اینکه یه نفر بالای پشت بوم راه میره بالای پشت بوم راه میره این وقت شب گوش کن آنا صداش میاد آنا گوش داد راست میگی یا مثل اینکه صدا میاد شاید از این سگای دله باشه که از گرسنگی نمیدونن چه بکنن مثلا مثل سگ اصحاب نه اون که بدتر از صحابش فقط برای آفتابه برداشتن از جاش بلند میشه حال نداره ایفون اسمایل بلند شد کمی بعد گفت نکنه دز باشه تا حالا سابقه داشته قدیما داشته ولی حالا نه نشنیدم بلند شد و کنار اسمیلی ایستاد هر دو با هم سرهایشان را میگرداندند صدا سقف اتاق را ترک کرد و به طرف طویله رفت آنا گفت بریم شاید بخواد از روزنی تبیل پایین بیاد از اتاق خارج شدند و آهسته به طرف طویله رفتند گاو خابیده بودم و نشخار نمی کرد روزنه باز بود و از آنجا به اندازه یک دایره آسمان دیده می شد چند ستاره در بالا سوسو می زدند صدا چرخی آمد رسید بالای روزنه آنا خوشحال شد نگفتم از این سگای دله است بی ببین چطور نگاه می کنه گم شو اسمایل سردش شد پشتش تیر کشید نتوانست حرف بزند آنا داد زد گفتم برو گمشو بیست ساب برو بعد گفت اسمایل تو هم یه چیزی بگو سگ جماعت از صدای مرد میترسه. به زنها خیلی محل نمیذارن. گاو از جا بلند شده بود و با وحشت به بالا نگاه میکرد. کرد. بی قرار بود حیوان میخواست بندش را پاره کند و آزاد شود. اه حیوان چرا اینطوری می کنه؟ چی شده گیلین؟ گیلین گیلین خانوم اما گاو بیطاق از بود میخواست فرار کند. آنا از تبیل بیرون رفت و با فانوس برگشت. آن را بالا گرفت. درخشش سرد و منجمت کننده چشم های حیوان در نور فانوس بیشتر شد. آنا گفت: ببین چه چشمایم داره صاحب مرده. مثل شعله آتش میمونه. های گاو ادامه داشت. مرغ و خروز ها هم بیدار شده بودند و سر و صدا کردند. آنا نمیدانست چه باید بکند چه خبرتونه؟ مگه گرد دیدین شما؟ مکس کرد و با خود گفت: گرگ چقدر شبیه گرگه رو به اسماعیل کرد یعنی ممکن خودش باشه در همین وقت صدای پارس سگ همسایه بلند شد چند لحظه بعد چند سگ دیگر هم با سگ همسایه همصدا شدند رفته رفته همه سگ های برابشره شروع به پارس کردند با این سر و صدا گرگ حراسان شد گاهی به اطراف نگاه میکرد و زمانی چشم به طویله می دوخت با پارس سگ ها ترس آن است چوب سوز کجوکله ای را از گوشه تبیل برداشت و پای روزنه رفت و چوب را به طرف گرد دراز کرد و با تهدید گفت برو گم شو کافر گرفتاری من خیلی کم بود تو هم پیدا شد گرد خورناسه کشید و دندان تیزش را نشان داد صدای سوت و سیحه چند مرد از میدان شنیده شد گویا اهالی از بیقراری و به هم ریختگی سکهایشان فهمیده بودند که گرگ آمده است در فریادهایشان اسم گرگ را تکرار می کردند. تجمع سگها در اطراف خانه آنها بیشتر شد آنها پنجه به دیوارهای كاهگلی میکشیدند و میخواستند از آن بالا بروند گرگ ناپدید شد به دنبال آن صدای پریدنش از روی بام به گوش رسید پارس ها بیشتر شد دست جمعی میدویدند صدای فریاد مردهای ده بلند شده بود آرامش شبانه بنافشدر را به هم ریخت با رفتن گرگ و دور شدن سک ها آنا نفس راحتی کشید و نیم سوز را سر جایش تکه داد و گفت پناه بر خدا این چه بلایی بود یهو آمد گاو دوباره در جای خود دراز کشید و مشغول مشخار شد سر و صدای مرغ و خروز ها خوابید آن دو به اتاق رفتند فتیله لامپا خود به خود بالا رفته بود و گردسوز دود می کرد آنا فتیله را پایین کشید اما بوی دود توی اتاق پیچیده بود اسماعیل رفت و جایش نشست رادیو را برداشت و روشن کرد صدای خشخش امواج بلند شد گشت و گشت تا به جایی رسید چسبان به گوشش کمی بعد گوینده اعلام کرد صدای ما را از واشنگتن میشنوید همکنون به مبحثی پیرامون گرک های آمریکایی و نقش آنها در توازن حیات وحش و اصلاح نژاد گرگهای ایرانی توجه فرمایید اسماعیل بی اختیار نگاهش را به سقف دوخت و پوزه بلند گرگ و چشم های درخشانش را تجسم کرد سر و صدا خوابید، تو هم بخواب. خدا شرشون رو به خودشون برگردونه به حق دستایی بوریده ی و خودش خزید توی رخت خواب. خاستی به خوابی فیتیله چراغو بکش پایین خودش خاموش میشه. فانوس راه رو روشنه. آنه لاحف را کشید رویش و سرش را به طرف تاریکی برگرداند. از بس لاغر بود معلوم نبودان زیر کسی خوابیده یا لاحف چین خورده است اسماعیل رادیو را خاموش کرد و فتیله گردسوز را پایین کشید و رفت در رخت خواب خوابید. شبهای دیگر همین ماجرا ادامه داشت. گرگ خودش را به روی بام می رسند و سر و صدای را در میآورد. به دنبال آن مردها بیرون می و مقصد همه آنها خانه آنها بود. حتما اهالی ببش در را با خود میگفتند: اونجا چه خبره؟ چرا گرگ از میون خونه های ببشدرره؟ خونه آنا رو انتخاب کرده و شباه رو پشت خونه اون میره؟ آنا در برابر های در و همسایه و حتی بالادهیها وا با بود. به او گفته بودند تو که تو خونت فقط یه گاوه پیر و لاغر داری پس برای چی گرگ از اونجا دست نمیکشه. از اون گذشته این گرگ مثل جن نه هر وقت بخواد دیده میشه هر وقتم بخواد کسی نمیتونه تونه ببیندش. راستی خونه تو چه خبری که گورگ میکشونه اونجا. آنا می میگفت گوش میکنم، اما نمیدونم چی بگم. منم مثل اونا نمیدونم این جونه تو خونه‌ی من چی دیده. از جون منو اون گیلین پیرم چی میخواد اینجا که خبری نیست اسماعیل به حرفهای آنا گوش میداد اما نمیتوانست دلیل آمدن شبانه گرگ را به او بگوید یقین داشت آنا متوجه نمیشد و بدتر به هم میریخت یک شب که باز هم گرگ خودش را روی بام رسنده و آسایش شبانه روستا را به هم ریخته بود به همراه پارس و زوزه سگها ناگهان صدای تیراندازی بلند شد انگار گلهای گاو رم کرده بودند و هراسان میگریختند صداها در هم میخته بود گویا همه اهالی بنفشه در بیدار شده و بیرون ریخته بودند حیاهوی پرتنینی فضا را انباشته بود چند دقیقه این حالت ادامه داشت تا اینکه کمکم از دامنه‌ی آن کاسته شد و تنها در بیرون از روستا سر و صدا شنیده میشد. آنا دائم میان اتاق و طویله در رفت آمد بود نمیدانست چه بکند بیقراری و ترس آشفتش کرده بود تو عمرم نه دیده نه شنیده بودم که گرگ از این کارا بکنه. این حیوان خیلی شومه نگرونم اسماعیل از اینجا برو جونتو بردار و فرار کن فکر میکنم اینا همش به خاطر توئه در همین موقع صدای در بلند شد از پشت محکم میکوبیدند بنظر میخواستند را بشکنند و داخل شوند در با تمام اجزا زجه میزد و میلرزید به همدیگر نگاه کردند. هر دو نگران بودند آنها توند گفت برو همونجا تکون نخور اسماعیل با سرعت خودش را به طویله رساند و در انتهای طویله پشت سر گاو توی آخر دراز کشید و روی خودش را با کاه و یونجه پوشاند. از همانجا صدای باز شدن در را شنید و بگو بگوی چند مرد با آنا را. صاحب یکی از صداها را شناخت، سرخان بود. نمیخوای بگی تو این خونه چه خبره که گرگ از اینجا دست نمیکشه؟ من چه میدونم برو از سگا بپرس، تو زبونشونو میدونی. یک نفر دیگر گفت: ما باید این خونه رو خوب بگردیم. مگه اون شب که دنبال قاتل میگشتین خوب نگشتین؟ تازه تونستم وسایلمو جابجا جا کنم دستوره برو کنار این صدای سرخان بود مدتی بعد آمدن طویله از صدای پاهایشان معلوم بود آنا گفت سرخانین چه کاریه که میکنی؟ دنبال قاتل میگردیم میگی نگردیم؟ کسی جواب نداد چند نفر در حال جستجو بودند سر و صدای مرغ و خروز ها معلوم بود که معمورها حتی از لانه آنها هم بی تفاوت نگذشتند به نزدیک محلی که پنهان شده بود رسیدند چرا قبو انداختن روی علفهایی که او زیرش دراز کشیده بود وجب به وجب آخر را میگشتند. گشتند علفها را کنار زدند و کف آخور را نگاه کردند خیلی زود بالای سرش رسیدند و راحت پیدایش کردند یکی از امنیه ها گفت قزلالا اینجاست، پیداش شد همه ریختند بالای سرش. دستو پایش را گرفتند و نور چند چرا قوه را انداختند توی صورتش چشمهایش را نمیتوانست باز کند یقهش را گرفتند و بلند کردند و از آخر پایین انداختند سرخان خودش را رساند به او و با لگت ضربه محکمی به پشتش گوید قاتل دیدی گیر افتادی. وقتی اون بد وقت میکشتی فکر کردی میتونی قصر در بری رئیس پاسگاه خودش را بین آن دو قرار داد عجله نکن سرخان حالا که غزلالا افتاده به تورمون آروم باش من اول باید دلم خونک کنم زن بینوام کشته کمرمو شکسته خیلی خوب همه چیز مثل روز روشن میشه یکم دندون جیگر بذار عجب آدمی یه با این حال سرخان میخواست حمله کند چند بار هم کلاه از سرش افتاد سربازها گرفته بودندش او فریاد میزد و تلاش میکرد خودش را به اسمایل برساند گاو گریخته بود گوشه طویله و با وحشت به آن جماعت نگاه کرد مرغها و خروس‌ها اطراف طویله پراکنده بودند و سر و صدایشان بلند بود اسماعیل را هل دادند و به راه رو بردند آن آنجا ایستاده بود و اشک میریخت نتوانست تاقت بیاورد جلو آمد دستهایش را دور گردن اسمایل حلقه زد کجا می‌برینش این مهمون منه سرخان خروشید مهمون نگو بگو قاتل بگو خرابکار بگو کمونیست نگو مهمون پیر زن. اسماعیل به یاد اولین روزی افتاد که وقتی با آنا روبرو شد گردنش را بغل کرد و صورتش را بوسید حالا هم جدا نمیشد. سربازها به زور او را پس زدند. کجا میبرین مهمونمو؟ کجا میبرین عزیز منو؟ سرخان بازویش را گرفت و کشید به عقب پرتش کرد ناله آنا بلند شد اسماعیل برگشت و به طرف او رفت و چند سرباز را هم که بازوهایش را گرفته بودند چند قدم دنبال خود کشید. اما ضربه محکم قنداق توفن که بر تیره پشتک نشست، او را متوقف کرد. سپس کشان کشان بیرونش بردند. عده‌ای از اهالی برفش در ربا فانوس و چرا قوه، در حالی که بیل و چماق دستشان بود بیرون ایستاده بودند. در نگاه آنها خشم موج میزد. اهالی به او به چشم یک قاتل بیره هم نگاه می کردند چمرت بشکن سفورا به تو چه بدی کرده بود؟ از تهران بلند شدی اومدی اینجا این بدبختو بکشی؟ چطور دلت اومد این کارو بکنی این حرفها را میشنید و نمی توانست از خودش دفاع کند سرخان افتاده بود جلو و خود چیری نمی کرد او را به میدان بنفشه در بردند جیپ ژاندارمری آنجا ایستاده بود عکس ماه افتاده بود روی شیشهش و از دور دیده میشد توی میدان هم چند نفر ایستاده بودند نگاهش به مسجد افتاد و پنجره های شبستانش که چشم های ماتشان را به میدان دوخته بودند صدای آشنای شُرشُر چشمه به گوش میرسید او را سوار جیب کردند دو سرباز مسلح دو سویش نشستند رئیس پاسکا کنار راننده نشست و در را بست هنوز جیب حرکت نکرده بود که در باز شد سرخان سرش را آورد تو و گفت منم بیام رئیس پاسکا گفت برای چی بیای. با سر و ابرو به اسمایل اشاره کرد کار دیگه یه دفعه نه خیالت راحت باشه ما هستیم و در را بست راننده حرکت کرد نور چراغ‌های جیپ افتاده بود روی دیوارهای کاهگلی کهنه و فرسوده خانه های بنفش دره. در, در آخرین لحظه اسماعیل به عقب برگشت و واپس این نگاهش را به میدان بیاندازد. تنها یک نفر در میدان مانده بود و نگاه می کرد. از دور خیلی شبیه سونا بود. جیب پیچید میدان دیده نشد.